امام باغر علیه السلام میفرماید به مقام تقوی و ایمان نمیرسی مگران که اینگونه باشی باکت نباشه دنیا رو کی برد کی خورد مهم باکت نباشه یعنی که آخ فلانی با هم هم کلاس بودیم و به کجا رسید ما کجاییم فلانی با هم تو بازار شروع کردیم و ببین الان یک راسته بازار مال و علم. آه آه آه از راه حلال بوده بروش جانش. اگه از راه حرام که بدا حالش اگه از راه فی حلال فی حلالها ها حساب و فی حرامها ها اغا آقا جون خیال میکنی اگه پول بیشتر شد تکلیفت سنگین تره پول در آوردن یه بحثه تکلیف خرج کردن یه بحث دیگره مگه زکات علم نشر نیست زکات مال هم زکات واجب و غیر واجب و شرایط هزاران با کش نباشه دنیا رو کی برد دنیا در نظرش کوچک باشه